مشورت با زنان تباه هست و سخاوت با مفسدان گناه. خبیس را چو تعهد کنی و بنوازی به دولت تو گناه می کند به انوازی نکوگی با بدان کردن و بال است ندانم دین سخن جز حوشمندان زبهر آن که با گرگان، نکوگی بدی باشد به جای